رخداد نادرستی نظری های نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی به نام خدا با از خدمت چمندگان گرامی و از احترام خدمت همه شما و همراهان برنامه رخداد در قسمت 16ام در خدمت شما هستیم در آخر قسمت 15ام یه بحث ناتمام داشتیم با جناب آقای ایران مهر خواهش میکنم ضمن سلام علیکم میفرماین با چمندگان گرامی ادامه بحث رو در خدمت شما باشیم تا اینکه بحث رو ادامه بدیم خواهش میکنم درود بر شما آقای دکتر محبی و شنندگان گرامی بله داشتیم این بحث رو میکردیم که همین امروز هم ما همون انسان توانا و با جوهره مکفی برای پیشرفت هستیم اینی که چه اتفاقی افتاده که حالا مثلا دانشمندهای ما تو ناسا جمعیت زیادی رو تشکیل میدنم اما تو کشور خود مثلا خب بالا خیلی این جنبه نیست و این پجوشگاه های این ها بحثیه بالا. که مربوط به پس از دوران استعمار میشه بله بح بحثش جای دیگه جای دیگه‌ست حالا میون کلامش... کلام شما مثلا همین یه دره‌ای هستش تو کالیفرنیا به اسم سیلیکون ولی به. که محلی هستش که بزرگترین نخبه های تی بله اونجا هستن شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات. اطلاعات مثل گوگل و یاهو و به ماکروسافت به اضافه‌ی مایکروسافت و این‌ها چون یا... چیزی نزدیک بیش از 1200 نفر ایرانی اونجا زندگی میگم که حتی تخمیز نمیشه اگه اینها مثلا نصفشون به ایران برگردن یک انقلابی بره. اقتصادی و برس. در واقع علمی در اینها اتفاق میفته اصلاً میگم میاد کلامتون حتی برگشتن اینا به تنهایی هم کافی نیست آقا دکتر زمینه های برگشت باید بشه اینکه به باد درست بشه این مقدار دلا باید صاف بشه یا مقدار بره. باید به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم یعنی ما در شب که می‌خوایم به فکر این که کی رو من درست میشه بریم کانادا نباشیم نباشیم یعنی باید کاری کنیم کم کم کانادایی بیان اینجا یعنی خیلی چیزا نیازه که درست بشه که خب تو این چنبری که استعمار درست کرده سخت دیگه به هر حال لذتم تو انجام کارهای سخت هست خدمتون خدمتتون کنم که حالا این بحث شیرینی اصن ما خارج از این بحث رخت تا کاش صدای امید های بذاره استادا بیان در باره اصلا گفتگو کنن ما واهمه کنه. به هر حال بر اینکه این محل اصلی بحث ما نیست من یک دو تا نکته که که نشست نشستای پیشین باقی مونده بود عرض می‌کنم شاید این یکی بعدا به درد بخوره درباره اینه که ما یک بحثی کردیم توی یک نشستا درباره این اتفاق ازدواج‌های خانوادگی من. اثرات بدی داره من نام یک قبیله رو یادم نایمد که اجازه دادم تونش از ساینده من. بگم به شنوندگان اینا یک گروه هستن از یهودی ها اینا به نام الان به نام ساماریتن معروف هستن اینا وقتی که بختون نصر اینا رو از اورشلیم آورد به بابل به عنوان اسیر ساماریتنها برعکس اون خاندانهای یهودی قبولی یهودی شروع کردن به مراوده با بابلی ها. قرار. این اینها به اصطلاح تو حس قرار گرفتن از طرف یهودیا. ها. یهودیا ها گفتن چون شما با بابلی ها در این مراوده میکنین ما دیگه رابطمون با شما قطع میکنیم. بعد از هفتاد سال که اینا به دست کوروش آزاد شدن و به اورشلیم برگردونده شدن حالا اتفاق برعکس افتاد. ساماریتن ها رابطشون رو با بقیه قبایل یهودی که اون ارмия و یشیا و اینا همه بزرگانش بودن هز قیال و اینا اینا با اونا قطع کردن و شروع کردن به ازدواج خانوادگی ظرف بیش از دو هزاره که تا امروز رسیدیم امروز کلا پونست شیش تا از این آدما موندن از این ساماری تنها همشون دوچار معایب جسمی و روانیان، و دیگه در آستانه از محلال کامل هن دیگه بل. یعنی این اتفاق حالا من مثال زدم این اتفاق در برخی ها تو کشور خودمونم متاسفانه داره میفته که من نمیخوام نام ببرم. بالده. الان گروه های مذهبی هستن که بجز خودشون تو ایران با کسی دیگه ازدواج نمیکنن. ما الان میدونم اینا مثلا یکی از معایبی که خیلی معایب مثلا همشون پوستشون یه رنگ شده. حالا هر رنگی شده کار نداره. همشون یه دست شدن. بعد بانوانشون وقتی به یه سن یائسگی به بعد میرسن موهاشون به شدت شروع به ریزش میکنه خیلی شدید. که تا مثلا تاصسی این همون معایب به که داره براشون پیش میاد این چون یک جا بار وارد بحث ژنتیکشا چیز های خانوادگی مطرح شد که گفتیم اتفاقا ای به ازدواج های اینجا بود یه بحث دیگه هم درباره اون شاپور زل اکتاف بود که گفتین میگن که یک بردش نادرستی دارن که شاپورشون ها رو سوراخ می و هم چکار میکرده فر این ها که این زل اکتاف یک لقب عربیه اصلا ایرانی نیست حال اصلا یکی دیگه بهشون داده شاپور زمانی این لقب میتونسته بهش داده بشه که مال قبل از زمان سیبویه بوده بنابراین درسته. چند چندصد سال, سال قبل سیبویه از سیبویه بوده. اصلا قبل از اینه که سیبویه به اسطلا پایه ادبیات و صرف و نه و عربی رو پایه بذاره دیگه اصلا چون تا اون موقع است نمیتونسته, اصلاً نمیتونسته باشه. باشه زبان عربی الکنی بوده اما اینطور مثلا زو بیاد اول و بعد اونجور معناد و این با اون اساس جامعه تعریف باشی چی باشی کار بشه اصلا نبوده بنابراین اصلا کل جریان تو حواس ذاتی دروغه چون وسط این مباحث مربوط به نظریه اسلامی هستین یک های جدی که وارد میشه به این نظریه تکامل چون میان اشتباهی میکنن نظریه داروین رو با نظریه تکامل که امروز بر پایه دانش ژنتیک داره پیش میره یکی میگیرن بله. بعد دوتاشو با هم میکوبن حالا کم کم بریم جلو و بعد وارد مباحث میشیم که اینا رو شروع میکنیم به تفکیک کردن از هم و این نقدها رو نقد میکنیم و میگیم که چرا داروین یه جایشو اشتباه میگفت چرا دانش ژنتیک داره تقریبا اینا رو تشریف میکنه و درست میگه و به اونجا میرسیم و من یه قولی داده بودم که یه جایی چون من یه بار اومدم به حساب تولید مثل و تناسل رو بله. از دیدگاه غربی ها از زمان مثلا بغرات و اینا گفتم چی فکر میکردن تا قرن ایفته هم که بعدش داروین اومد به عرصه اونا رو گفته بودم بعد ارجاع دادم گفتم من یک تو یک نشستم خواهم گفت که حالا ایرانی ها شاید چند هزار پیش از این این نظری درباره تولید مثل داشتن بعد من گفته بودم که اونو خواهم گفت درسته من اینو باز هم نگه میدارم بریم این نقد همین آقای دکتر رو یکم بله. جلوتر بریم بله بعد, بعد, بعد هر وقت فرصت شد در خدمتتون هستم نقد مرحوم دکتر صاحبی رو مطرح کنم بعد پرسشی در واقع رو دل... دل... از شما خواهم, خ... خواهم که شما میفرمایید دل... مرحوم دکتر یعقوب الله صحابی از اساتید برجسته زیست شناسی و همچنین حد زمین شناسی از تربیت بنیان‌گذاران دانشگاه علوم دانشگاه تهران هر چند وابستگی نسلی انسان رو به میمون یا مثلا به هر موجودات دیگه ای فرضی اثبات نشده و به طور کلی فرضی داروین رو قابل ایراد انتقاد میدونه معتقده که اصل نظریه تکامل همونطور که شما الان فهمید تکامل تدریجی تکامل تدریجی انواع مسلم و پذیرفته شده است بر. و مخالفت با اون در واقع مخالفت با یک اصل مسلم علمی است همون بر. که بروقع ما تو برنامه توضیح بحث دادین که پس بحث, بحث, بحث, بحث, بحث, بحث, بحث, بحث انسان رو داریم جدا, جدا میکنیم. مثلا میکنیم. از گیاهان. گیاهان و در واقع اه. کل نبات ها اصلا موجودا تکسیلوریه دیگه که و همون طور که شما فرمودید نظری خود هم خود تکامل هم خود نظری داروین هم تو در واقع نهله جدا از هم هستن و لزوما این تا با, با هم دیگه هرچی زمان میگذره اینا هیچ بیشتر فاصله میگید بله دقیقا دکتر صحابی معتقده که همونطور که عرض کردم مخالفت با اون رو مخالفت با نظر تکامل رو فقط به معنای مخالفت با یک اصل مسلم علمی تلقی میکنه و این در واقع معتقد این داروین نیست که مبتکر این تئوری بوده بلکه پیش از او لامارک، بوفن و دیگران و پیش از اینها علمای اسلام و یونانیان در این مسئله پیش قدم بودند عذرا صحابی آیات متعددی از قرآن معید خلقت تدریجی است و ما نباید با انکار این مسئله که جزو مسلمات دستگاه آفرینش حقانیت اسلام رو زیر سوال ببریم و هر به دست مخالفان و منکران خدا بدیم اه. در واقع صحابی نظریه تکامل داروین رو تکامل تدریجی رو از نظریه داروین جدا میکنه چون اولین کسایی هستش که در ایران در واقع اتفاق کتابی داره تحت خلقت انسان اونجا در واقع میاد نظریه تکامل تدریجی رو بله. از نظریه داروین جدا میکنه و استنباطات داروین و داروینیست ها رو از این نظریه قطعی تلقی نکرده ولی اصل نظریه خلقت تدریجی رو مسلم و از لحاظ علمی مقبول و از لحاظ سابقه مقدم بر دیدگاه خاست داروین می دونه و نه تنها هیچ سازگاری بین آن و قرآن پیدا نمی کنه بلکه بر این نظر هستش که قرآن خود اثبات کننده، این در واقع نظریه بلد. تکامل در واقع هستش تو درست به نظر میرسه دکتر من فکر میکنم که این نظریات که حالا به عنوان نظریات مذهبی هست خیلی خشک بهشون نگاه شده یعنی نمیدونم درست شد چی باید بگم خیلی بسته و باید دید واقعا سنگی به اینا نگاه شده بلد. اگه یکم با دید باستری نگاه بشه میشه تفاصیر خیلی بازتر و با علم روز منطبق از اینا استنباط کنه ولی خب خب متاسفانه برخی وقتی خب به متن علمی مراجع میکنه خب میرن اول با گارد اول یعنی با یک بله. پیشفرزی در واقع میرن وقتی که کسی پیشفرضی می میره یا مثلا با یک عینک خاصی یک عینک بدبینی خاصی به یک متنی نگاه میکنه معمولا خب متن رو درست و گیری, گیری میکنه و درست از اون متن استنتاج نمیکنه بعد از مرحوم دکتر صحابی مرحوم مرتضا متمرحوم استاد مرتضا متحری هستش که خلقت تدریجی رو پذیرفته نه نظری داروین. فکر بله تدریجی رو پذیرفته و در جهت تعارض زدایی از قرآن و نظریه تکامل تدریجی به ریشه های مختلف با این نظریه پرداخته. ش... مرحوم متهری در مخالفت با کسایی که تکامل تدریجی رو با توحید و خداشناسی منافی متنافی میدونن میگه که از نظر قرآن چه خلقت را دفعی بدانیم؟ چه تدریجی کار خداست؟ و علت تلقی نادرستی که این نظریه رو مخالف خداشناسی و نظریه ثبات انوار در راستای خداشناسی شمرده است از نظر مرحوم مطهری دو پیشفرض در واقع دو پیشفرز استش یکی اندیشه خدای اون چیزی که در واقع شما فرمودید و بنده کردم با خاصی به متن نگاه کردن هستش میگه که یکی اندیشه خدای رخنه‌پوش که خدا را در مجهولات خود جستجو میکنه و دیگر اندیشه یهودی که تدریجی بودن آفرینش رو با مخلوق خدا بودن اون در تضاد میبینه از دیدگاه مرحوم متحریب بر اساس قرآن خلقت آنی نیست یعنی ما خلقت آنی در یک لحظه در واقع به وجود تخت سنگ سن یک دفعی خرست به وجود آمده باشه با با با با با نداریم, نداریم. بلکه یک حیوان و یک انسان در مراتب تکاملی که طی میکنه دائما در حال خلق شدن هست اینجوری که خالقه خیلی کارش درستره که اگه همجوری نگاه کنه دقیقاً میرسه که... مرحوم با استفاده از آموزه های صدرایی در فلسفه اسلامی برداشتی نوع از نظریه داروین کرده بود بر این اساس جهان همیشه در حال خلق شدنه چون دائما در حال پیدایش است نیازمندی آن به خداوند عینیت و ملموس‌تر اتفاقاً اینجوری دا... بله هم بله دائمی هم هست اینجوری نیست که مثلا خداوند اون برداشت که ما از مدرنیت داریم که خدای ساعت ساز و خداوند دیگه به خواب رفته اصلا کاری با بببببب ببببب. بببب. ببب. این دنیا نداره و و ساخته و دیگه تموم شده تموم شده بله ساخته و به یه نظمی در آورده بود که به خواب رفته دیگه اصلا کاری نداره به این دنیا لذا معتقد که در این حالت اتفاقا جهانی که در حال شدن هست در حال خلق شدن هستش بیشتر به خداوند در واقع نیاز داشته به اون جهانی که در واقع یک بار آفری آفریده شده و و هیچ کاری هم نمیتونه داشته باشه بنابراین نظریه آنی بودن خلقت از نظر متحری انسانی نیست در اسلامی نیستش نه انسانی هستش نه اسلامی هستش نه با عقل انسان قابل اثبات هستش نه با متون اسلامی انظر مرحوم متحری حتی اگر از نظر علمی قطعی باشد که انسان اجدادی حیوانی داشته باشد مثلا از یک سری در واقع حیوانات دیگه از موجودات دیگه انسان تکامل پیدا کرده با ظواهر دینی قابل تعویله رضا برای قابل جمع ساختن دیدگاه قرآنی و نظریه تکامل تدریجی سعی وافری به عمل میاره و می‌بینیم که اینجا مباحث مربوط به نسبت علم و دین سعی می‌کنه که مباحث علمی رو در واقع دینی جلوه بله. گرایشی در دهه 50 و چهل به وجود اومد خصوصا توسط افرادی چون مرحوم بازرگان و مرحوم متحری در مقابله با اندیشهای های مارکسیستی که اون موقع خیلی در ایران در حال نوزج گرفتن بود یک گرایش نسبتا نمیشه که افراتی به در واقع سازگار کردن این نوع هر نوع علمی با در واقع دین و قرآن هستش که اینجا ما تو نظریات مرحوم مهندس بازرگان هم اینها رو داریم که برخیاشون نقد شده و برخیاشون در واقع پذیرفته شده از اتاق فرمان در واقع اشاره میکنن که قسمت این قسمت هم رو به پایان هستش همراه با شما و با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم اشار در قسمت 17 هم, هم نظریاتی که شما قرار بفرمایید در مورد نگاه ایرانیان نگاه از چند هزار سال پیش به این ور و در مورد خلقت و در مورد تولید مثل و همچنین ادامه نقد اندیشمندان بس. اسلامی به نظری داوین میپردازد بخش هیفده هم الان هیفده هم. هیفده, هم. هیفده هم تاون شد ششونزده هم شد آه. و میریم قصفت هم از شندگان عزیز خداحافظی می‌کنم خدا یارو نگه